بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله عبدالله و سوال الله و عدا سیدنا رسول الله و آله طیبین و طاهرین المعصومین و لأتود رای مطمئن و عدای محباین اللهم احسانا و جميع المشترین و الحمدن و رحمتنا و راجه به مقام جمع بین روایات بود در روایاتی که ما داریم که وحسنه مختلف بود از بعد از مرحله صدور روایات میریم به مرحله انتقال از نصوص به فتاها بین اصحاب ما از شد که در کتابی که مثل فهورزا و, و کافی اینها به این مطلب نظر کافی چه رو راجع به نجومه چی بدش چی خوبه همه رو توی باب کتاب روزه و روزه ایشان در اصلی بود از مسادر قدیم ما که راجع به روایات نجومه در حقیقت قدیمترین مسدر ما که متعرض شده به این روایات کتاب مرمون صدوب رسان الله را علیه مرخون صدوح اولا در فقیب عورده چند تا از روایات رو و بعضیش هم کتاب های دیگه خودش رو بوده مثلا در فقیب یک روایتیشون عورده از عبدالملکه نهرین که احرف کتبک که تو رو ارز کردی و این روایت در روایات ما شاهد نداره یعنی منحصر بفرده. و در بعدی ها هم یعنی بعد از مرموم صدور هم اینه که بخیرم نگاه بکنیم برای روش کار بکنیم بینیم در فتابا این آمده یا نه آمده مثلا امر به احراب خطب ها در، تا اینجایی که خوندید در متاخرین اصحاب یعنی کسان اینکه اون روایت نساب میکنن چون مثلا تا زمان شیخ تقریبا میشو تا زمان صدور چهت هنوز یک ارتکازات متلقیات بین اصحاب ما بود مثلا فقط سینه بیسی نرمونه که مطلب اینه ولو در روایات نبود بقول صدورم گست همه تو مشایخ انا مزاکره زن. که مزاکره ایم در شبه از همه افضله این سینه بیسی نرمونه تو روایات وارد نشده ما الان بیشتر این بحثمون برای همینه که جنبه که بین اصحاب بوده چیه؟ تا زمان شیخ مفیدوی اینها انصافا میشه گفت که احتمال تلقی از در معلیه مسلام هست یعنی احتمال که قرار نیگوده دیگه از زمان فصل ابن الیوی تو محبه و اینها دیگه قطعا عمل بوده شبازه و عدله بوده دیگه جهت تلقی مطلح نبود در مراهل بعدی نگاه بکنیم که آیا چه بوده در این اینجا در مراهل بعدی ازده قبول کردن خود صرفتهای سابسال ا بله به ااعرااب کتوب بید سال و سال در نیاز در خیلی متع داره ما باید از قدیم شروع کنیم. سبوق داره ازتون اهرا کت ب داره. یکی این داره سبوق یکی اون بهوارد معرووط منصدده قوه من, من, من ات منجه من و صد اووق فر کرد اینطوری منناه نبی تو آخر جنده چهارم داره و یکی هم لا آخ به قول راق این خیلی ربطی به نجوم نداره این ربایات که رو که مرحوم صدوق عورده انصافا منفیه بله یک ربایت ابن عبی عمر هم داره که من نجوم برد بودم حضرت فرموزن که در علا اول مسکین سن من مورده انالله عزیزی یا تا هم مفاد اعتماد نکردن نه مفادش بستان خود علم و اصلا تحریم و نمیدونه احراق و کتب و این هم و وقت چند این راجعه ببینیم و اما راجعه به کتاب لیر کتاب فقیه ایشان مهمت روایت در کتاب خسال در کتاب همالی همون روایت معروفی روش خوندیم که در محجاقه است ایاکم و تحلم علم و نجوم این هم داره پس صدوق یک مقدار از مطلقات رو داره احرام کتب داره ایاکم و تحلم این ایاکم و تحلم تو اصلی شهر بوده توی کتاب فرعی شده یه نکته‌ای می‌خواستم ازتون یادم رفت رسولا بگم مرحوم سید صعود در فرج المحمود این والی کتابی به نام عیون الجواهر میگه برای رسولی کتابی عیون الجواهر اینو ازونجا نقل کردن واقعا که از تهیورای مناسبون هم سید صعود این حرفا عیون الجواهر هیچ نه مرحوم صدوق نه مرحوم نجاشی نه مرحوم شیخ به صدوق نسبت ندن کتابی رو میگن عیون لکه خالص اشاوا ما کتابی میصله و اونام نجواهر این حدیثا در حمای موجوده احتمال معقول شینه که شاید مثلا کتاب عمالی رو ایشون در یک جایی بیده اسمش اونو جواهر بوده باشه مثلا یا معنای واقعی برای امالیه اینه ایشون کتابی نام الامن جواهر نداره که ایشون نارده منظور صدوقه پس ما اولین کسی که داره که موضع منفی دیگه راس و روشنی بر ضد و نجوم داره مرحوم صدوقه و در این موضعش احراق کتب هست البته اگر هم جونت صاحب وسائل معنا بکنه من صدقه بقید کفره بما امزل علا محمد هست یا کم و تعلمه علم النجوم هست اگرم مثلا طالب چیزی بخش شما خلافش بکنه با صدر خلافش بکنه هست من منحیط المجموع تقریدا میشه گفه از این زمان این روایات شد. از این زمان چطوری وارد فرقه ما شد لیکن ارز کردن این نقطه که ای سلطور کلی مفید کلا چون صدوق رزوان را علیه المجموع با کلینی با این که در قوم بوده هزار کتابش میخواده خیلی موافق نیست حالا اون جهات و مخالفت رو و حتی میراث کلینی رو هم از یک طریق معروفی نهارو نمی کنه آلوان از شخص محمد بن محمد ابن کلینی که اصلا خود این آره نمیشنسیم یه گله حدیث در یک از حدود 100 تا 3 4 تا دیگه هم چنین مفعول پیش این فلان, فلان فلان محمد بن محمد بن یعقوب همه اونها رو نمی‌شناسید اینم برای ما خیلی تعجب‌آوره این واقعا خیلی جای تعجب داره برای ما که صدوق چطور شده از بزرگان کسی نبوده برای کتاب بکنه نر بکنه از سه چهار تا بیشتر محمد الان محمد الان و روایات زیاد داره که خلاف و اون روایات عرض رو هم که دیروز عرض کردم شاید خب میگم شینا مسرح نشده یک اده روایات و با همون سند کلینی میاره خود دقن بکنی هم سند کلینی و که مرد نگاهی یک فرهای خیلی لطیفی داره دیگه نمیفرون چون معروف اینه که کلینی از وقت من احتمالاً من به عکس این باشه صدوق به انایه اونطور رو باده. مخواد بگه کلینی اشتباه مردی یا لاعقل مخواد بگه نسخه کلینی این خیلی مهمی مثلا اون روایت حج رو کلینی داره که ماهجبال لاعنی داره سندشان یکی در کتاب ایمان و کفت اندار برد صدو همون رو تو کتاب رو تودید داره ماهجبال با همون سند دقیقا ماهجبال از کلینی روی داره دیگه ماهجب الله اله و, و عن العباد خیلی فارغ میکنه می خب دیدید بعضی از ماوسین ما برخلافش 40 سال ایشون حدیث دره روشون قبول نمی کردن حدیث حج رو قبول کردن برای براعت شرعی و خب گیر دادن چون تعبیر بعضی سخت کردن ها نسخ نمی شه چون اگه حدیثا نسخه بدل میشه. نسخه نیست اونطوری جهل کردن در کتاب کافی ماهاجرب الله داره ایشو میگه ماهاجرب الله میشه برای الله در نمیاد مقایسه نه اساسا اختلاف نص نه ترجمه شده در کافی با همون سند داره ماجرا الله علیه و همون روایت با همون سند در توحید صدوق آمده ماجرا الله علم و آله با البته که مشهور یه مسئله اختلاف داره پیانا. من خواهم وارد بحث بشم طولانی من نظرم اینه, اینه که صدوق ناظر بکنه اولاً یعنی چون حالا دیگه عذبتیت فرم میکنه چون مبانی ما که شد چون نسخه از این دیگه نیست نهایت که نسخه ای توش علمه هون نبوده چون نسخه صدق بوده نیمون خواهد آن از کلمه عذبتیت نیمون خواهد آن کلمه عذبتیت باشه چون تفکرات حساب فهمستی نداشتن همش رجالی موتی رجالی که اگر نیست عذبتیت نیست همین حدیثی که نظر بکنن به موی زنهایی که متبرجات هستن که خب این از کتاب و ابن سحیب هست مصدر واضحه لا لاوسته به نظر به موی زنهای اهل ببادی و فلان و اهل ذمه تعدیم و اهل این کلی اینجور نهار کرده لذا که زنهایی که در ها پستن موهاشون در میاد یا زنهایی که مسیحی هستن یهودی هستن اینا اشک لعنه هونه ازانوهینه لای یا لعنه هون لعنه هونه ازانوهین لای انتهیم چون هر دوز لای انتهیم لیکن همین روایت رو با همین سنر صدوق زده کرده احل برادی اموزه احل بادی و اوستایی و نگاهتی نار به جای و احل زمه داره من احل زمه یعنی <تصفح> این دهاتی ها اینه که تو دهات هستن که احل زمه من و این خودش اصلا دهتی بوده اختیار سراباتی نداره. مثلا اصلا بسی یه دهتی بوده چون در اون زمان اهل زمه یهودی و نصار ها میتونن اصلا زنها تو شو... قراردادی دیگه ها کنید در جمهوری اسلامی اینطور میگذن اهل زمه ها میشه چاربت به سرشون شوید... پوشش به سر میگذن اون وقت زنها بدون پوشش بودن یعنی اهل زمه یهودی و نصاری نصارا. ولی اصلا ببینید اصلا بحثی این باب رو در, کل... در بخاری هم ندار از اجای به اما بخاری روایت نداره کنه <تصفيق> قرUND بخاری هم داره اما روایت نیست ما روایت داریم سال به وسائل اون روایت احل ظلمه رو. باب قبلی قرار داشته این روایت ای یک باب قرار داشته ساع به چون والت هم اندرسه احون کلگمی اگر می باش این با اون روایت احل ظلمه یکیه <تصفيق> دو تا باب یک باب. و این چقدر فهم میکنه بعد هم لعنه هم نایدانوهی ناینته این هم واضح میشه نکته شیه آیون زدن به فسخ و فجور این زنی که شیه هست چون فاسقه هست پس میشه به موش نگاه کرد بعد به بزنه هم میشه نگاه کرد به بدنش هم میشه الاخلی اصلا توجه هم نشده اون حدیث من اهل زمه هست اون هم نکته فنیش این لعنه هم نایدانوهی ناینته هم چون قانون با اونها اجازه داده قانون زمه با اونها اجازه که موش میبون باشه و این یک بحث کبروی بوده که اسم شما میزنید تلازمات یا به تحبیر باید تصانخات اعتبارات قانونی همیشه باید بنشونه اینو تصانخی باشه سنخیتی هست اعتبارات قانونی درست امیدیت و معلولیت نیست حالا تحبیر به تلازم شاید دقیق نباشه یه بحثی بوده از قدیم که این تصانخات بین اعتبارت قانون بحث جادبی هم هست یعنی بحثی که واقعا زنده است. مثل این بحث زیادی فقه از همین تصانخاته در حقیق از تلازمات بغلاهایان اون بحث این بوده که اگر قانون یا نظام حالا به جهت منجه ها اجازه کش، وجه یا دست یا مو یا دست به زنداد، به ملازمه اجازه نظر به به مرد میدینه طلاظون ویدتون مثلا ایده از اهل رسالت گفتن چطور با اهل رسالت میتونن بدن شورای گفت زن میتونه موشه باز بکنه پس مردا میتونه بدون لذت نگاه کنه این طلاظون میینه مثلا کشرو لگ زن میتونه کشو از اون تو بازار میره بدون آرای و ازش از میونه پس مردا میتونه این طلاظوماته این لغنهام نه ازانوهین لاین تهون یعنی به اهل زمین اگر به این موته پوشو میگه نخواهم من لذت بون باز باشی بس این کنایت یعنی مادام قانون اجازه داده که موی او باز باشه پس طبق تسانخار نظر هم جایزه به دون شهرن این بحث تلازمه نه این که اگر زنی اسیان کرد و آسیه بود و فاسقه بود و آجره بود اون حدود الهی رو کنار کنه شد اینجا باز کرد ماشه و بود شما هم یه نگاه بکنید خب این که حرام بود این که حقیق نیست این حقیق یک کسی آسیب شد اسیان اون که مسبب داره مجبز اسیان دیگری نمیشه الان خب به از حقاهای محاصر به اصلا فتوا دارن توجه نشد اصلا چین این معنایی اصلا نه بعد قانونی داره نه ای اصلا نکته فمنی داره حالا این نکته رو به ما صدوق تنبخ بده کرده اون و اهل زمه رو کرده من اهل زمه تمام مشکل دارگرده تا چندین اینکه خب باشه خب خب. خب میشم یعنی <تصفح> اون اهل نساء چون بوابی اینا بیشتر در کوفه عراق بیشتر این کارگرانی که بودن زنهای زردشتی بودن اصلا اهل زمین هم دیگه میشه مثلا رو بیشتر ایرانی ها اداره میکردن که زردشتی بودن مسیحی هم توش بود یهودش کم بود یهودی میباد برد مسیحی هم داشتن اما بیشتری زردشتی بودن که ایرانی بودن تقدر میکنی؟ این سؤال اصلا واضح شد دارتون اصلا مطلب اصلا چی بوده چی شده بعد کجا با یک تحریفی باید اشتباهی چطور مطلب عرض شده که اگر زن اسیان کرد شما هم حق اسیان دارید اصلا اسیان حق نید اسی او دو کرده، بیر بیر خب و اسکندری چون نهی از منکر بگه انور بگه نگیشوام یک اسلام میمونتکب بشی خب مرحوم صدیق علاوه بر این نکته رو مخاطر دوم دو مثال بر که یکیش در براءت شرعی موخره یا چند تا این فتوی جوای باید دقت بکنید که چطور میشه مرحوم صدیق یک مثلی رو میکنه این تصور که میان کلیه بحث از بس یک نیست میگه بحث نسخ شناسیه ما هم به کلیه هم نمیکنیم اشتباه میشه با این علمه موسیقی. موسیقی. این تو, تو که این کلامی که ما گفتم اون میوتو تو شده اینو आमदार گفتن نشو کلین البته پس نسخه کلین قبول میکنی یا من گفتم در واقع این زیادو نمیشه این حرفا رو گفتم کنار روزی بگی چه جدی تو ما تو واقعا شما دنبال شواهد برید دقیقن در نسخه ای که صدوق نقل کردی اینطوره حالا الان من برای شما که خلال بحثا من زیاد خواهد شد که اختلاف نوسته بین سادو و ده. حالا من از این بحث حاضرین که می‌خاجیام شدین این خیلی مفید داره ما بران روشن خاطرش ما حالا من سادو با مردم کردن غیر از این که حالا در اختیار روایات با هم اختلاف دارن اختلافشون زیاده نمی‌دونی مخاطب از اون بحث بشن یه مقدار اختلافاتشون اینطوریه بعضی روایات هم هست که این اهل سنت هم متأسفن حتی پش‌دالن ولی ما خیلی نداره حالا اصلا اون اونو به دوباره معنا کرد مثل باهتونو که اگر اهل بدعت آمدن بهتان بزنند این چه معنی مثلا درو نسبت بده ببین دیشب این شراب می‌کرد باهتو این باهتونو این نیست اونجا جون هم حال اینه باهتونو اینا به دین به گفتن می‌زنن یا اگر اهل بدعت سود دیدین باهتونو بعد اینا نثار دروغ بدین مثلا بگین اینا جناکار اینا قاچاق اینا شراب خورن اینا ما نکرده یو خب همین ما گفتن اینا نثار دروغ بدین باهت این نیست این حالا اونجا خاید گفت این نیست مراد باه روحان بگید اینهایی که اهل به هستن مطالبی رو که به دین نسبت میدن بحتانان هر دین نهی <تصحیح> که شما دروغ بگید بگید اینها به دین دروغ میگن به قصر میگن <تصحیح> با باقی از زمین در معنای عبارت تحق میکنه حالا به هر مار مرگوم صدوغ رزوانداتالا حالا این شای تو ب من حیث المجموع با کله می فهم مشکل کجاست من اون شیخ توسی که من کرارا ارز بدم تا این لحظه ای که من در خدمت رو از این مکتب دوم ورداز که اون مقام جمع جمعی شیخ توسیه اون چی که ما الان داریم بالای نور درصد از مکتب شیخ توسیست این سال مرحوم شیخ توسی تقریبا مدود بیش از هشتات درصد میراس حدیث رو از کافی گرفتهیه یه از کارهای صدوق رو که اصلا اعتنا نداره مثلا روایت فضلونی شجا هم اصلا نه در رجال اسمش رو برده نه در فهرست آورده که ایشون مثلا ای کتابی از امام رضا نه تا یک قطعه از این حدیث نقل کرده یه ادغاری هم داره اما خیلی کمه مهدار نقل ایشان از مردم صدوق خیلی کمه علیرغم اینکه کتاب که قطعاً در اختیار ایشان بوده نمی به هر حال انصافا مرحوم شهید با بعد صدوق، از, صدوق از صدوق تمایور کلیشان به کلیمیه نظام مرحوم شیخ توصی هیچ کدام از این روایات صدوق رو نقد نکرده چهار روایت با در صحیح از صدوق تنجوم گردید اونشان یکیش از اعراب کتابا که یکیش مصدر رو باها داد لاقو به قول اعرابی نه مطلق یکی از قصه ابن عبی که از آن صدقه بده برداشت بشه حتی اگر طالع به این کار بده صدقه بده هیچ کدوم از اینا رو شیخ سوسی نیمونده این یک نکات فندیست که برای فقه شیعه و تطور و تحولی که در فقه شیعه آمده فوق العاده برای شما محصر این تا اینجا از مرموم صدور البته تا اونجایی که من تو ذهنم هست دیگه خیلی هم آشنا نیستن به نظرم تو مقنان اینها چیزی نداره راجب اینجا این تو همین کت بعد از شیخ صدو اونی که به ما عبارتش رسیده مرموم شیخ مفیله همونطور که مرمومه در کتاب به ها صفحه 278 از جلد 75 58 چاپ مدرد از جلد 85 ایشون داره که مرموم مجلسی از قول سیدن تا از قول مفیل ایشون هم میگه که از کتاب مقالات مرموم شیخ مفیل نهار کرده اما میگه این کتاب من ندیدم در کتاب شیخ صدوق نیست شیخ مفید نیست من خیلی نمیخوام همه شروع بخونم تا بسیار کنم شونی جزء عبارات اولیه ماست تا یه مردالش رو بخونم شیخ مفید اینطور گفته عبولو این نقطه فنی رو ما حالا ممکنه شما کنی سرفشی سرفش رو خونید همیشه دوباره اون نقطه فنی باشید عبولو این و شمس و پمره برا سازن رجوم اجسام و ناریه طرف تفکر اینها خب اینا محدث بودن فمیه بودن متکلم بودن دیگه جغرافی و جمعیت و نجوم و فلک بلد ده بودن اجسام و ناریه لا حیات لها ولا موت ولا تمیز اینا حیاتی ندارن صلقه الله تعالی لینتفع به ها عبادو و جعل ها زینتن لسماواته اولا این مطلب توی آیات و مبالکه کرد. از سماع زیانه این هست زهین سماه دنیا رو و هم تو روایت هم آمده این احتمالاً اشاره بیشتر با آیه باشه تو روایت اهل مومنین بود که در یک نسخه در همه مصادر بود که نجومی که هست اینا مثلا زینت هیچ اثری نداره شبیه این عبارت در اهل مومنین هست ولی اصلا البته همه این عبارت نه یک مقدار این عبارت اون لا حیات ولا شعور نه و آیت من آیاته کم و فال سبحانه و تعالی بعد خودش از آیه که و ها لذی شمس و و نورا و قال سالا و ها لذی جهل لکنون نجون به سهت دروبه ها بعد عباراتی از فعمل احکام از چند تا آیه دیگه ایشون نهار فرمدن که آیه مراجعه کنن فعمل احکام علل کائنات مرد از حکم این که اینطور خواهد شد سرما میشه گرما میشه بارون میشه چنین اول به ها که دلیلش اینه اول کلام الا مجذور حرکاتها فئن لعقل لا ینعم اینکه آسمان ها ستارگان تسی در بین داشته باشن بخوب نه مشکل نه اون که از الاله اون باشه و لسن نفعن یکون الله تعالی اعلمه بعض انبیائه این اشاره به غزت روازه است که اصلی نجوم از انبیا بوده وجعل و, و علم له علی صدره که شبیه معجزه قرارش داده چون بشر عادی اونجا نمیرسه که توضیحی بعد arz بکنه غیر از لا لام نفس علی دلیل واضحه نداره کشایون رو ما این ما این حنر وایز داشتیم معلوم میشه برای مشهد مفید چون در کتاب از شیخ مفید در اصول یک کتاب کوچیکی داره 45 صفحه حرف زده در کتاب کزرا طاوی تاریخی اونجا ایشون مجل خبر رو منکر میشه درما ما ان شاء الله سعی احتمالا با این که ایشون منکره مثل و مرتضا نباشه فر بشه با سهل وزا از این عبارت غیره انا لا نخواله ولا نعتقد استمرار رو فنناس اله هایلغایه اون رضایات اشاره داره اما قبول خیلی نه تا این حدی مردم بتونن بفهمنی یا تا این زمان اله هایلغای زمانه بود. و اما مانجده فیلم احکام منجمی در اون زمان منجمی زیاد بودن د و اسا سنتو توی هم برای خودشون منجج داشتن و اسابت دعره فی اصلا میگن چه میاد میشه فینحو لاینون کر ان یكون به ذرب من تجربه این معنی واقعیت تازه یه نو تکرار من از کلامی کتاب کتابی که نوشته از دیغه‌ری که من پنجاه سال مرکب کنترل کردم که نووز مثلا در شنبه باشه تون سال چی میشه یک شنبه باشه چی میشه همه رو حساب کردم و نتیجه‌اش ولی نشه نوشته و به دلیل عادت می خواهم این شبیه هر اشاره که ممکن که الیته این جریه عادت دید. یعنی این جزء قوانین تکوینی واقعی نیست که مثلا اگه خوشی اونجا بود بارون میشه اگه اینجا بود این میشد مثلا دیگه اگه گنجش تو آپی چیزا آورده شب بارون بخوش تجربه کنه میگه الیته واقعی نداره و قد تخطل با احیان و یخت المعتمد علی المعتمد است ولایت و اسابت او فی هبداً دوست نیست لانه نیست بجار مج را دلائل العقول یعنی املیت تامه نداره مراد چه دلائل یعنی و عقلی نیست و لا کتاب نه جزء کتابه و نه جزء اخبار رسول یعنی نه به حکم عقل ثابته نه به آیاتی کتابی ثابته و نه به روایات و حالا مذهب و جمهور متکلمی اهل الهرم اهل الهرم در استداریشون اهل مذهب شیعه و معتدل این جرده ایشان به دعوای اجمعش خوبه این از این جرده لیکن خوب دردت بکنیم با باز به اخبار تمساکی نکرده اینکه که استادیشان مرمون شده مفید استاد استادیشانه شده مفید پیش اون دست اجازه دارد این ورنا شاگردانو همون سفر دو سفر به همون شهر شهر محفید ایجاده با این که نوشتی و پیشون بوده از راه روایات نرفته هم. و حالا مذهب و جمهور متکلمی اهل عرض خلاصه اینه که ایشون از اون بحثای تحبودی احراق کتب تعلیم شرامه این کذا مثلا فاصله یا اینا رو دی وارد نشده ایشان ایشان بحث علمی آیا این حرفایی منجمی و این استخداداتشون ارزش علمی داره می نه گاهی هم درسته گاهی هم نادرسته نادرست هم بیشتر از درسته و این برای اثر جمعی عادت تر تا از اگه مثلا این کار شده اون کار انجام شده هیچ نقطه این و علیه ذهبه بنو نوبست من الامامیه و القاسم عبال و عبالی من المعتذره این کلمه نوبست من الامامی من احتمالا در علم و اندالله شاید نظر به همون روایت باشه که ما سابقا از این کتاب آنگ خواستن از کتاب مرحومه سیرن تاووس از کتاب همین به اسلام مرحومه صفحه 250 بهار اگر خواست این هاشه بزنیم صفحه 250 بهار و 250 چون در اونجا میگه من نوبخ این گفتن نحن قلد بنی نوبه گفتم بعض از این محاسی نشن نوبه بخت نوبه بخت, نوبه بخت. وقت کن نها کتب نها الیک حل یه حل و نظر و فیال فکتب نعم بعد و المنجمون یختلفون في صفت الفلک فبعضا نقول ان الفلک في النجوم و الشمس و غمر معلقون بالسما و هو دون السما و هو اللذی یدور بالنجوم و الشمس و غمر و السما این افکار منجمینی که بوده انها و این نجومه این مهیت و نجومه لكن منجم در اون اصطلاحات پیشبینی ها هاون سیر و پیشبوی اینا بوده و یک بولون دوران الفلک تحت الارد چون زمین و کراویدی می و این تدور و مالفلک ما تحت الارد و تقیب و تحت الارد و تصل او بلغدا تون المشرف فکر تبه علیه السلام نه ام مالم یخ رو این که مرحوم نسبت ظاهرن اگر عبارت شیخ مفیق همینطور باشه احتمالا این عبارت شیخ نوبه ناظر به همین کلام این روایت که بنی این البته این احتمالش هست احتمال هم هست که ایشون از همین کتاب یاغود چون حالا مثلا یاود هم قبل از ایشان خوب بود که ایشون یاغود رو اول می آوردن در مرحوم مرحوم نو, وقت نو وقتی در کتاب یاقود که محبوم علامه هم شرحی برای این قصد چیه؟ انوار المرکود توی شرح یاقود از خدم عبارت بعد عبارتی یاقود هم بیاریم بقال از شیخ نو وقتی در کتاب یاقود قول المنجمین کجا از این راه وارد شده یبتل هو قدما اونی که مبتله لازم میاد که قدیم باشه و اشتراط اختیاری و یلزم و علیهم الا يستقر الفعل علی حال من الاحوال و قول و قول و اهل تبایه این یلزم علیهم بعد علامه شرحی داده تقریبا تفصیل کلام یاقوت رو در خلال کلمات مرغوب سید مرتضی ببینید پس تا اینجا مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی اگر این نسبت درست باشه خیلی ناظر در روایات نیست تقریبا حالا خیلیج اینجوری بگیم در مکتب بغداد خیلی هنوز این روایات جا نیفتاده بوده توی مکتب قم بوده این مثلا صدوق معیارش باشه فهروم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه این مسئله بیشتر از بقیه صحبت کرده از صفحه 281 در کتاب قرر و درد در اجربه مسائل فقهی ایشون سوالی مطرح شده جواب البته این گفته شده درباره هم نیست الان در زن رسائل ایشان جلد دوی رساله سید مرتضی مجموعه رسائل در چاپ شده مل القون فی ما یختر به منجمون من وقوع حوادث و یضيفون ذلك این اضافه نسبت مراده با اضافه مراده، نسبت میدن الا تأثیرات نجوم و من ما لم مانع من تاثر الكواكب على حد تأثیر شمس العظمى فينا عظم یعنی سرد میگم سر، سردی یعنی بهسا گندم گونه چطور اگر انسان تو خرش توی به خ... توی بهسا آبساب راهی در صورت سیاه میشه ترزل چه چطور نور خوشی موجی میشه که بدن انسان تغییر به بکنه کنه بگیم نجوم هم همچه تأثیر دن کواکب هم میتأثیر دن حد تأثیر شمس علا قضمت فینا قضمت بگیم بنا گندم گندومگون بزن و امکان تأثیر و کواکب مستحیلن اگر میگید کواکب تأثیر ندار مانه من انتکون از تأثیرات من فعل الله تعالی به جنگ الاده این به طلوع و کوا که خداوند این عادت رو قرار داده فریون ان به بیان زالک لطف بکنی انعام در انایت داری جایت انا این نل انفس علیه متشبقه این مثل جاو سال تو بغداده و کیفه تقول این منجمین حادثون معنه لا یحص دومن اقوالهن الا القلی به اکسون حاکن گفت رو شمش باطل در میاد اغلبش درسته حتی انهم یخبرون برکسوف و لذا میگن کسوف مثلا کسوف و کسوف در تاریخ نجوم چند هزار سال قبله که پیش بیدی کرده و درست در وقتش واقع شد یغفرون بر کسوف و وقتی و مقداری مثلا یک چار رو یک پنجامش میگیره سلا تکونه الا ما اخبرو به الا الا ما اخبرو به فعی و فرقن بیل اخباره به حسول ها در تاثیر فرجس که مثلا کسوف پیدا میشه و بین حسول تاثیر ها پی الان این یکی تقویم قدیمه که مرحوم منجم باشینا روش مثلا تاثیر این کسوف در روی کره زمین تا سه ماه خواهد بود دو ماه اجل نمیشیدشون بعد از کسوف های که کلیو جزئی سوال اینه وقتی منجم میگه کسوف واقع میشه که هر چیزی قبول میکنیم وقتی میگه تاثیر تا 2 ماه داره چرا قبولمونم قبول میکنید قبول وقتی میگه این واقع میشه 2 وقتی میگه تاثیر در کره زمین تا 2 ماه اونم قبول میکنید روشن شد سواله صلا چرا شما یکی چه قبول میکنید و چه قبول نمیفرمایید خبرش رو خصوص رو قبول میکنید تاثیرش رو قبول نمیکنید ایشون از جواب جواب ایشان خیلی مفصله وقت ما هم مساعده البته خیلی نافعه انصافا حتی من در فکره ولی همیشه میگم هر چی فکرناس خیلی وقت شما رو میگیره اعلن ان المنجمين يذهبون الا ان الكواكب سخر الفرز و من عليها یعنی انسان و حیوان این مرحله ها همون مواليد ثلاث رو عرض کردم اونها یک اباء سبعه قائل بودن یک امهات اربعه قائل بودن و یک مواليد ثلاث این مواليد ثلاث یعنی اباء سبعه همون کواسیل که بالا زحل اولش زحل و چهارمشم خورشید و قمر هم اولیش یعنی از ترتیب که اول سما اول قمر میاد مریخ و زهره و تو بعد اون یکی دیگه عطارد و عطارد قبلشه بعدش هم زهره هفتای حساب میکردن افعالم این افعال و من علیه ها یعنی به اصطلاح جماد و نباس و حیوان و امه ها تاروه هم عبارت از حساب از تکریب قلب به قول مرور از همه سنگینترش خاک و کرای خاک و بعد کرای آب و بعد کرای هوا و بعد کرای حاتش اون هفتا در این تا اثر میکنه این سه وجود میاد که موضید سلاته بشونگه و منحله ها افعال هم ها الى طبانه ها حالا یک نکته ایشان که الان هم هست بین فلسفه و خلال شریع از این ها این دعوایی که از بحثه کلمان مفرح سیر خیلی متضاق این همین مفرح میکنه ایشون یه اصلا کسانی که غالب نیشون موحد نیستن خدا شده دوید اینا که اعتقاد دارن تأثیر نیشون این اصلا توشون موحد و, و دیندار نداری. اگر هم میگن شوخی میکنم میگه ما فی همعه دنیا اله امن الله تعالی اجرال آده کسی موحد تو اینا نیست توی منجیبون به امیف علیه اند قرب و از بعض او بغده و افعال من غیر انگکون دل کواکد انفسها تأثیبان پیداله کسی حالا قائله این مطلب بشه بگیم خدا این نور رو درشون ایجاد کرده این جری آزته و من ادعا این خیلی عجیبه و من ادعا ها مذهب الان من هم اگر کسی قائل میگه من مسلمانم و قائل به تأثیر نجومم صحوه قائلون به خلاف ما ذهب تل قدام این خلاف فوقای قدیم فلسفه قدیم خلاف منجمین قدیم منجمین قدیم قائل به خدا نبودن اگر کسی هم من مسلمانم اعتقاد به خدا دارم بازم هم, هم منجم این راه قدما نداره و متجملون به هاذ المذهب اندهن الاسلام این داره پیش مصلنا خود نوایی میگه <تصفيق> مسلمان نیست. یعنی هر کسی که قادرین جو به ایمان به خدا نداره و متقر به الهیه به اظهاری این تو خودش رو مسلمی نشون میده. ولیس هاذا به قول لا عہد ممن تگد ده. بعد بحثی عقلی میکنه که الان فشار در کتاب با یهود که هر خیلی طولانی کلامه بیشتر اشکال ایشان به اصطلاح این است که مثلا اونها حیات دارن مثلا ایشون حالا بله ایشون مثلا این که از دلیل وقت سطر, سطر المتکلمون طرقم کسی به فیاننا ها لیتت به حیه بله ولا و اکثر قادره و اشف مماقید فیزایی واضح به این دلیل معلوم حیات ان اندال حرایت شدیده که حرات نار تنفیه ها با شعله آتش که حیات نمونه بعد بعدش میگه شرر که حرارت از آتش بیشتر خوشی که بیشتره با این حرارت چطور از در خشیت حیات باشه معلوم نیست که خشیت حیات بشه اصلا اینا با و یه مقدار صحبت کردن که اینها الان بعد یک صحبت بین خودشو بعد خیلی طولانیه بله که من الان وارد بحثش نمیشم و شوباته متفرقه دارن که دیگه اینا طولانیه اما اونی که به درد کار من میخواد از اون صفحه دیوی سه هشتادی گفتم مشغول میشه نیشون بله در صفحه دیوی سه هشتاده هچ هشت این محل افتشاد ماست و من عدل دلیل علا بطلان احکام نجوم مهمترین دلیل اینه علا امنا قد علم و امنا من جمعه معجزات لانبیا حل اخبار عن الغیوب. و از دلاله که ذلك خارق آداد که احیاء المیت و ادراء الاکثم هلا ابرس کسی کول بوده چشمو داشته ابرس بوده ولو کان العلم به ما یحدثت اگر علم یک طریقن جون باشه این دیگه موجوده نیست دیگه این یک امر طبیعی بوده جونجو تاثیر این میونه لم یكن ما ذکرناه معجزه نه را خارق للعادات فکیفه یشهدو اینجا محل شاهد من و کیفه اشترده ها علا مسلمه بزلام احکام نجوم چیون ممکنه مسلمان بگه احتمال در احکام منجمین درسته و قد اجمع المسلمون قدیمن و حدیثاً الان تکذیب منجمین این عبارت ایشون که سید مرتضاشون سه موضوع عمل به خبر نیست اهل عمل اجماع اجمال بسته و مخصوصاً از علمای وقتا این مطلب ایشان علاقه انشاءالله مساحبه هایی نظر میگه باشن مثل مثلا این مقصدی که من ارز کردم معلوم میشه پیش گومی ها بوده وغدادی ها نبوده بوده معلوم میشه و منجمی این در وغداد اتفاقی بوده لآقا حالا این یعنی یک عبارتی از, از مرحوم شیف صدوق از گومی ها نهار کردیم دعوای اجماع از سیر در عوال قرن پنجم. آقا اون تاریخ خوشنست تو عبارت شش نبود که مثل شاگرد ایشان است شهید و قد المسلمون قدیما و حدیثا علی تکذیب منجمیل و شهادت به فساد مذاهبهم و بطلان احکامهم و معلومون من دین الرسول ضرورتاً انا اصلا مش راست دیدی تکذیب به ما ادعیه منجمون من چه کردم من ساده گفتم اما یکی رو که من صدر مونجیمه که گفتم شوالیه تاریخی ظریفه و درخواستش ارکدید یه لغزه سردمرد دو میگه این مطلب اجماعی میشه همه مسلمان ها اجمالی است که تکذیب اون راجیم و معلوم من دین رسول ضرورتا از تکذیب باید در این المونجیم این منشه این شد که تدوجه در فقه شیعه را دید با اینکه انتقال از عهد نصوص به فتاوا خیلی واضح نبود. اجماع سید مرتضاونم اجماع از بغداد ولی ادراع علیه و تأجیز لما بر روایات انهو صلی الله علیه و آله و سلم منذاله که مالا وحسا کترتن این روایاتی که از مطلقه های در دهر ده ده سنده خیلی عجیبه سید مرتضار از بناتال علیه این روایات روایاته همه ایک چارپن سخته که ایشون را شد به وقت نجوم و اصلا حرفا دروغ هست و اون بحثان به جه خود بعد این قسمتی که مربوط به ماست این الان در فر روایاته صلی اللہ علیه و علیه و سلم نمیداله که مالای و ساکترتن و کلا علماء اهل بکیهی و خیار اصحابیهی فمازا رو یبرهون من مذاهب المنجمی و ها غلالا و محالا و مشتوه رفی حالهان شعر اسلام دین الاسلام کیفه به خلافی منتصمان چطور که یک مسلمان باز به خلاف این کاری انجام بده و مسلمه علم که یکی که مسلمان نماز بخونه بیادی این حرف بزن فاما فا حسابات خیلی اخبار عن الكسوفات و ما مذاق اثناء مسئله که در سوال شما بود من طلب فرق بهزال بین, بین سایر ما یخبرون به می تاثیر کواکب حساب نفسن فرق اما كسوفات و اختراانات الكواكب و خسوفات طریق چه میشه نه طریقه الحساب این محاسبات فلكی حساب دارن قواعد خاص خودشه و تاثیر الكواكب و له اصول صحیحه این محاسبه با درسته. درسته. درسته. فاصله من 20 متره. خب راضی نه. من چون در فاصله 2 متری شستم، پس دو ساعت دیگه پول گیرم میاد. این باو با خیلی فهم میکنه. یک چیز حکم، یه چیز واقعه، فاصله من با وصولش تاثیر میکنه. ببین خب اگر فاصله شما با وصولش تاثیر پول گیر نمیاد. یا پول از نمیاد. من ثانی که اولی درسته علم، اصلا دومی باطله دومی علم دونه یک هست و گمانه له اصولون صحیحه و قواعد و صدیده ولیسه که دارد ما یدعونه من تأثیرات کواکب فی و شر و نفع و زور ولونم یکن فی بین الامرین الا لده اصابت دائمه المتصره فی و مجم و مایجی مجرا فلای کاریبین و فیاختان آن و اینم خطه المعهودت دائم اینم آقور فی الاحکام الان خیلی کلام میشن پس محنون شد که از تون وقت موزه شده انشاءالله تا اینجا از زمان سید مرتضای واشه ها مثلا میشه پس در کتب روایی ما اصلش در کتاب فقیه نموشن کن؟ اما در کتاب فقیه یکیش احرام کتبه این تو عبادی سید مرتضا نیامده ها یکیش تکذیب تو عبادی سید مرتضا آمده ها. اون چیزهایی که در عبارت فقیه هست عده ایش توی اجماع و روایات اینها اما عده ایش نه فقط منحسران در فقه که اون احراغ کتب باشه تا اینجای مسئله تا بدین مسئله فرده و سال الله و محمد